الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من سره أن ينسأ في أجله ويزاد في رزقه فليصل نراح في السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنومك عليك منا سلام الله عبدا السلام على الحسن. My me. که تاکنون توفیق قیافتهیم و در کنار هم و غیر هم بودیم انشاالله می توانوانیم مطالب راهبردی را در پیش کار خش و در مسیر خش دریافت کرده باشیم و میتوانیم به این وسیله انشاالله جامعه آشرایی را بی در جلسه قبل که راجع با اهداف آن حرکت معمار کربلا یادآوری گردید که بازگشت به اصول واقعی اسلام بود تحول بنیادین در زندگی معیشتی و اقتصادی مردم بود تحول اساسی و بنیادین در روابط اجتماعی و تحول سمر بخش در نظامهای مدنی و اجتماعی بود. راجع به اینکه با چه این ابزارهایی میتوان اصلاح افکار و اصلاح اندیشههای یک جامعه را انجام داد و کار کرد، دیروز چند نمونه یاد شد که از اون جمله مسائل مسئله آموزش و مسائل دیگه بود در کل ابزارهای عمومی که در همه این اهداف دخالت داشت تدبیر بود، مدیریت بود و یک مسئله دیگه که باز هم تأکید میشد مسئله سازمان یافتگی است یعنی این مسئله رو یادآوری کنیم و اشاره کنیم تمام سازمان یافتگی به این معنی است که یک فرد به تنهایی نمیتواند کار را و پیش ببرد به اندازه خودش میتواند اثر گذار باشد ولی این نفر اگر بزرگ شد و بزرگوار هم گردید اون زمان میشود جمع اون زمان دقیقا معنی همون شیر میشود که جهان است که بنشسته در گوشه یک فرد گاهی به قدر بزرگ می شود که همچون جهان میگردد ولو در یک کنجه از کنجهای دنیا نشسته باشد وقتی افراد چون این چیزی شد وقت طلاب خواهر و غیرش چون این چیزی شد او زمان می تواند براحتی و با اصول سازمان یافتگی کارش رو به پیش ببرد و به جامعه سازه آشرایی بپردازد و موفق بشود در دیروز یک جلسه راجع به اصول جامعه سالم و کار تشکیلاتی انجام شد ازا ارجاع دهیم به اون جلسه مراجعه کنین ساوتش موجود هست ازا از این مسئله بگذارید پس بر این اساس ما شما سه تا کار عمومی داریم که یک تدبیر، مدیریت و مسئله سازمانیافتگی باشد از اهداف حسینی بازگشت به اصول واقعی اسلام را دیروز خاندیم راهکارهایی که در زمینه موجود بود و آنهایی که یاد شد در قسمت وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و روابط اجتماعی و نظامهای مدنی مردم امروز را راهکارهای را خواهیم خاند الله تعالیم در قسمت این که زندگی مردم چطور باید خوب بشه از نظر اقتصادی دو نکته حد اقل مورد لحاظ هست. اولن مسئله ای که در وضعیت بهتر شدن مسائل اقتصادی مردم به خالت خیلی کلیدی میتواند داشته باشد اعتقاد به با مسائل غیبی است. از جمله این اعتقادات ایمان برازقیت بر خداوند متعال هست کسی که ایمان برازقیت بر خداوند متعال دارد این فرد هم از نظر اقتصادی طور زندگی میکند که نگرانی نداشته باشد و هم توفیقات را میتواند کسب کند و خداوند متعال هم بر اساس گمان مردم و مردم روزی میدهند. هر کس هر اندازه گمانش به خداوند متعال بیشتر باشد این روایت هست هر اندازه مضمون روایت این گونه هست که هر که هر اندازه ایمان و گمانش به خداوند متعال زیاد باشد همه اندازه رزق و زیاد هست دومین مسئله توکل به خداوند متعال هست اینها در امور بعد غیبی دخالت داره اون که به خدا توکل کند کارهای اقتصادشان آسانتر می‌گردد. و سومین مسئله مسئله تفویز و الارزاق اله هست یعنی بندگان خودشان تلاش کنند زحمت بکشن، دیگه اینکه چقدر از این حاصل بدست میاره چقدر دارایی در زندگی براش کسب میشه نمیشه اینش مربوط خداانده متعال هست خدا هر اندازه که اراده فرماید به بر... اندازه مسلحت مردم برای مردم رزق روزی می دهن. اینا از مسائل غیبی هست نباید کسی بیش از اندازه مسلحتش از خداوند متعال مال بیتلبد یعنی امکانات دنیایی بیتلبد که اگر بیش از اندازه کسی داشته باشد آخرش اون شخص را اغوا می کند و از مسیر حقیقت بیرون می کند و این در صلاح کسی نیست بنابراین مسائل اقتصادی مردم اول مسئلهش مسئله بُعد غیبی است یعنی همه مردم باید خود را یک نوع متکی با خداوند متعال بداند نه اینکه خود را مستقیما در مسائل اقتصادیشان دخیل بداند و هیچ مسئله غیبی را در نظر نداشد چون چیزی شدنی نیست در قسمت دوم بعد از مسئله غیبی یک سلسله اعمال و رفتارهای اخلاقی است که سبب میشود شود رزق روزی مردم زیاد شود این مبادی و قیم و ارزشهای اخلاقی زیاد است حالا چند تعدادشان را اینجا یاد کنیم اولین مسئله مسئله سعی و تلاش هست کسی که تلاش نکند خودش را براستی مسخره کرده است کسی دنبال رزق و روزی باشد و تلاش نکند چون این چیز شدنی نیست سعی و تلاش یکی از مسائل ارزشمند اخلاقیست آدم تنبل مورد پذیریش جامعه و حتی خود مردم نیست دومین مسئله اشتناب, اشتناب الیمین الکاذبه یعنی از, دروغ از قسم دروغ پرهیز کند این متاسفانه در جامعه در اجتماع در همه کشور فعلی و حتی کابل ما ممکن است دیده بشود که خود درو قسم دروغ سبب میشود که یک نفر در رزق روزیش زیاد نشود کسی که از, دروغ از قسم دروغ اجتناب کند سبب میشود که رزق و روزیش زیاد بشود اخفاء جوع یا همو پنهان کردن گروسنگی کسی که گروس نباشد و این گروسنگیش را پینهان کند تا جامعه در نگران فرو نرود این خودی سببساز زیادی ریسکروزی می شود اینجا ممکن است کسی در بعض از این مسائل بعض سوالات ایجاد بشود که این مسائل چطور می تواند سبب ریسکروزی شود در همه قسمت جو به شکل راحتش این توریست کسی که گروس نباشد و گروس نگیش را پینهان کند اگر از کسی پول مطالبه کند چون او نمیداند که این شخص دستش تنگه و راحتی می تواند برش پول قرض دهد حتی پول دهد که او روی این شخص روی آن پول کار کند ولی اگر مردم متوجه باشد که این دستش بند شده نمی تواند با راحتی به این پول حتی قرض دهد چرا چون می ترسد مگه که ممکن است پولم را نتواند پس دهد پس بسیار بازی هست که اخفا الجوع سبب می شود که ریسک و روزی یک نفر زیاد این به شکل ساده همینطوره ترسیم می شود استغناست استغناست یعنی دارایی و بینیازی بدون شک مردم باید اظهار بینیاضی بکنند چرا چون هر چی نیاز است به درگاه خداوند متعال باید عرضه کرد نه در پیشگاه دیگران در پیشگاه دیگران بدون شک مردم باید استغنا کنند بینیاضی کنند که خود استغنا و بینیاضی سبب می شود مثل همون مسئله قبل که رزق روزی مردم زیاد شود چرا چون خود این مسئله اعتماد به خداوند متعال را میرساند و توکل و امیدواری به خداوند متعال را میرساند و گمان عالی با خداوند متعال و خداوند متعال هم روزی عنایت میفرماید مسئله بعدی اسراج و قبل الغروب هست پیش از اینکه غروب صورت بگیره وقتی چراغ ها را در خانه روشن کنیم کود روشن کردن چراغ قبل از غروب در خانه سبب میشه که رزق روزی زیاد بشود مسئله بعدی اتقام و تعام هست تعام دادن برای دیگران غذا دادن برای دیگران سبب زیادی رزق روزی میشود اقتصاد هست اقتصاد در زبان عربی به معنی است که آدم توره در قسمت مصرفش در نظر می گیرد در قسمت درآمدش و در قسمت امور مالش که مالش حیف نشود مسئله بعدی اقتناع شاد هست وجود گسفند یا گسفند داشتن سبب می شود که رزق روزی مردم زیاد شود اکل و مایز من الخوان اونچه که در دسترخان می ریزد یعنی اضافهگی از غذا خوردن آدم می ریزه اون کسی بخوره سبب میشه ریسک روزی زیاد بشه ولی اون تیکه های یا چقیده های از مایده و لغمه که در درون دسترخان هست اگر کسی اونها را اعتنابهش نکند و بیاندازد، این سببساز زیادی ریسک نیست استعمال الامانه کسی که امین باشد امانت مردم را سالم امانت داری کند و خیانت نکند سبب ساز زیادی رزق هست البکور فی قلب رزق صبح گاهان زود وقت دنبال کار و دنبال روزی حلال کسی باشد این خودش سبب ساز اضافه زیادی رزق و است همونطور که خوابیدن در صبحگاهان سبب از بین رفتن رزق و روزی می شود. تجارت هست خود تجارت در اسلام مورد توجه قرار گرفته است کسی که تجارت می کند خودی سبب می شود که رزق روزی زیاد بشود اتخبتمو بالعقیق و غیره کسی که انگشتر عقیق در دست میکنند یا یا خود و امثال هم در دست میکنند این سبب میشه که رزقروزی مردم زیاد بشه تخلول دندانش رو خلال میکند این تخلول هم ممکن است از جمله مسائل باشد که مورد سوال واقع بشه که چی طور خلال کردن سبب میشه که رزقروزی یک نفر زیاد بشه ساده راهش برای فهم این مسئله اینه که کسی خلال کند دندانش دچار مشکل نمیشه میدهش او خوراکی هایی که سبب اذیت شدنش هست واردش نمیشود و با مریض نشدن این فرد پولش برای دوا و غیر دوا هم نمی نمیشود هم پول می میشود با مریض شدن و هم فرصت ضایع میگردد چرا چون مدتی که مریض هست نمیتواند درآمد کسب کند پس هم از درآمد مانده هم عمرش ضایع شده و هم پولش مصرف شده کسی که چونین کند سبب زیادی رزق و میشه بدون شکل همون توریست یعنی پولی که تا هنوز داشته سر جای خودش هست عمرش هم ضایع نشده و پول جدید را هم داره کسب میکنه از خود سببساز زیاده رزق و روزی است ترک و حرص. نباید مردم حریص باشند یعنی این اینقدر دنیا طلب باشند که همه چیز رو در طلب دنیا به ذهن و سر بپروراند خود ترک حرص سببساز زیادی رزق است این بسیار عجیب است اون که بیشتر به دنیا بچسبد سبب میشود که روزیش تنگ بیشود ولی اون که از دنیا دل بریده از سبب شد روزی زیاد می شود ساده ترین راهش برای فهم این مطلب اینست که یک نفر که به دنیا چسبیده هیچ کسی وقتی خبر ازش باشه با او ممکنه معامله نکند به او چیز امانت نسپارد به او چیز قرض ندهد و خود همه قطع ارتباط مردم با یک فرد مال خواه و تجارت بیشه سبب میشه که کار این فرد لغو بشه و به زمین بیمانه کسی که دل از دنیا کنده همه مردم به او اعتماد میکند وقتی اعتماد کرد روادی صادرات، و رداد زیاد میشود تجارت زیاد میشود و معامله زیاد میشود ازدیاد معامله تجارت است تجارت زیاد شد بزقروز زیاد میشود اینا مسائل عجیب غریب است که متاسفانه در خور جامعه داده نشده یعنی با این مسائل است که هم جامعه خود به خود اصلاح میشه هم جامعه آشرایی میشه و هم امور معیشتی مردم درست میشه جالبه کار در اینجا هاست، ترکل کلام فلخلا وقتی که مردم در دشتوی میرن نباید صحبت کنن مگر اینکه، مجبور باشند که صحبت کنن کسی که در شوی صحبت کنه خود اون مسئله یک مشکل در وصل اقتصادشون به پیش میاره تصرح و یا او تمشیق شما آلمان بزرگ را تصاویرش را نگاه کنید هیچ کدومشان موی دراز ندارن به مراجعه تقلید نگاه کنید همه سرهایشان تراشیده است و مسائل دیگه و جمعه مسائله که سبب رزق و روزی می شود تزویج هست شاید بعضیا بیترسن از اینکه ازدواج کنند خود ازدواج کردن سبب میشه که رزق و روزی مردم زیاد بشن این از اجایب کار هست مسئله دیگه خصوصیت نامگذاری است ما در روایت داریم در خانه ای که نامهای مثل محمد، احمد محمد، احمد <تصفيق> علی حسن حسین ابو جعفر ابو طالب عبدالله فاطمه این اسامی در خانه که باشه در اون خانه فقر داخل نمیشه. مگر اینکه خود مردم سبب ورود فقر بشن. مثلا جمله مسائلی که سبب وارد نشدن ملائکه میشه وجود عکس چون سگ هست. نفر در خانهش عکس های اینچونینی یا وجود نقاشی کردن یا مجسم سازی ها مثلا یا همون زیرمانده دسترخان نخوردن و امثالهم خود مردم خودشان سبب میشوند که فقر وارد خانهشان بشود یا خواب صبح صبحان و الا در خانواده های که اسامی این چونی باشند در اون خانواده ها فقر داخل نمی شود تقلیم العذافیر یوم الخمیس کسی که ناخنش رو در روز پنجشنبه بگیرد سبب میشه که رزق و روزی زیاد بشه کسی که روز جمعه ناخنش رو بگیره هم اثر دیگهی دارد از جمله مسائلی که باز هم سبب ازدیاد رزق و روزی مردم می شود این چونین هست. تقوی هست اینچونین هست هم جامعه آشرایی ساخته. می شود و هم سبب روز زیادی روزی می شود یعنی مردم وقتی کفش می متوجه باشند چه رنگی را می خرن. بعض رنگ ها مناسب نیست ابيض رنگ خوبیست توکل که قبلا خواندیم، الجمع بین سلاته کسی که بین دو نمازش جمع میکنه خودی سبب میشه که رزکروزیشان زیاد بشود الحج و العمره حج و عمره در ظاهرش مصرف کردن پول هست چون مردم حدوداً چند لگ باید مصرف کند تا به حج برود این در حال است که خود حج و عمره رفتن سبب زیادی می شود چون دنیا توریست خداوند متعال طور دنیا را مدیریت می و طور نظام را چیند که هر چیز بر اساس علتی است قبلا خوندیم باید اون که بیشتر به دنیا بچسبه بیشتر به دست بیاره این در حال است که هرکی بیشتر چسبید یعنی هرکی بیشتر خیرس ورزید او کمتر رزق و روزی به دست میاره هرکی تعام نده باید مالش بیمانه این در حال است که هرکی اتعام تعام کنه به دیگران غذا بیدن روزیش زیاد میشود هج عمره هم همین طور است حسن الجوار همسا خوب همسایداری سبب میشه رزق و روزی آدم زیاد بشه حسن الخب زیبایی نوشتن حسن الخلق کسی که اخلاقش زیباست رزق و روزیش هم زیاد هست همون جمله معروف بین مردم معروف است اون که خلقش بهتر از خوراکش بیشتر است شبه این مثال هست حسن الخلق بلی اون که اخلاقی زیبا هست نیکو هست رزق روزیش هم زیاد هست حسن کسی که نیتش عالی است رزق زیاد می شود اون که نیت بدی به مردم داره در عالم واقع به خودش زرر زده است هر که نیتش بد باشد هم اندازه رزق روزیش هم بدتر شده میره هر که نیتش خوب باشه رزقش هم زیاد میشه ادابه و همینطور ادامه بدیم دوام و تخاره. هر که دائم و و دائم و باشه و پاک باشه خودی سبب میشه که رزق و روزیش زیاد باشه ذر الملح على اول لقمه کسی که در اولی لغمهش نمک برداره یعنی با نمک با هم بخوره خود این سبب میشه که رزق روزین فرد زیاد بشه از رفق خود رفاقت سبب زیادی رزق میشه از زکات زکاتی که یکی از واجبات دینیست زکاتی که یکی از واجبات دینیست و مسائل اقتصادیست که هم فقرهای جامعه با از فقر بیرون میشه خود اعطای زکات سبب میشه که رزق خود زکات دهنده هم زیاد شود این اراده خداوند متعالی چونین هسته مردم نمیدانند و از مسائل واقعا و الا به اشتیاق خودشان زکات میپردازند خمس میپردازند و واجبات دینیشان رو میپردازند اونطوره که ما راجع به مرگ داریم در روایت داریم میگه کسی که مرگ را اونطور که حقیقتش هست درک کنه علاقه من میشود این عجیب است مرگ خیلی سخت است بین مردم دادن پول هم همینطوری زکات هم ممکنه برای بعضی سنگینی کند چرا؟ چون زکات را به معنی نابودی مالش بیداند این در حال است که هرچی زکات داده بیشود همو اندازه سبب زیادی رزق می شود در کربلای معلوم مگر ما شما نشنیدیم که مردم التماس میکنن، زاری زاره که بیاین نان همون نفر را بخورد چرا چون کربلاییان و کسانی که در کربلا از زوار امام حسین علیه السلام استقبال میکنن، آنها تجربه شده برایشان و تجربه کردند که در هر سال هر اندازم مال و داراییشان در راه امام حسین و برای خدمت زایران امام حسین مصرف شود خداوند متعال در طول سال آینده همینطور نعمت فراوان به اینها اعطا میفرمایند و هر اندازه آنها کوتاهی و هر همان هم اندازه رزق روزیشان کم می شود زکات چنین هست از مسائل دیگهی که سبب زیادی رزق و روزی می شود شکر به درگاه خداوند متعال و تشکری از کسانی است که و مردم خوبی کرده چون کسی که مخلوق خدا را ازش سپاسگزار نباشد مثل این است که خدای نخواسته از خود خداوند متعال هم سپاسگزاری نکرده است صدقه هست صدقه خودش در ظاهر کم شدن ماله ولی صدقه سبب میشه که ریسک و روزی مردم زیاد شود سیله رحیم هست پیوستن بر رحیم هست پیوستن بر رحیم خودی سبب میشود که رزق و روزی مردم زیاد شد امام حسین علیه السلام میفرماید من سر ره و ایون سعفی فی اجله کسی که میخواهد عمرش طولانی بشود و یزاد فی رزقه و روزی از زیاد شود فلیصل رحیمه پس باید به خیشان و خیشاوندانش بپیونده سیله رحیم با خبری از اقوام و خیشان رفع و دفع مشکلات اقوام و هم سبب زیادی رزق روزی می شود و هم سبب طولانی عمر می شود القول الحسن هر اندازه مردم سخنش زیبا باشد همه اندازه رزق و روزی زیاد است هر اندازه زبان مردم زشت باشد و کره باشد همه اندازه مردم از این فرد دوری می و رزق و روزیش هم کم می شود قول الحق سخن با حق گفتن خودش سبب زیادی ریسق روزی است قرض الخمیر و خوب و غیره راج به نان اینا هست و مسائل دیگه ای از جمله آن وجود داشتن پیش از غذا خوردن هست اینا مسائلی است که سبب میشه هم جامعه جامعه آشرایی بشه و هم ریسق روزی مردم زیاد بشه این خیلی مهم هست بانوان جامعه ساز آشرایی وقتی این مفاهیم را بیتوانند در یک جامعه در معرض عمل مردم قرار دهند اون جامعه خود به خود آشورایی شده است مشکلات اقتصادشان هم برطرف شده است دیروز راجع با مسئله بازگشت به با اصول واقعی اسلام یا همه اصلاح فکر و اندیشه، و راخهایشان رو خواندیم. امروز راجع با مسئله اقتصاده هم یاد آوره شد دو تا مسئله دیگهی که روابط اجتماعی و نظام مدنی است، همینطور خلاصه خلاصه یاد کنیم و جلسه امروز خش و کل جلسات امسال خش رو به پایان ببریم در قسمت این که اصلاحات در امور روابط اجتماعی یا مسائل سیاسی و مسائل فرهنگی و مسائل مدنیت و اجتماعیات وجود بیایم پنج مسئله را می توان یاد کرد یعنی پنج ابزار برای اصلاح امور سیاسی و امور فرهنگی مردم می توان در نظر گرفت و البته باید دقت کرد که باید بر اساس قرآن عمل کرد اساس امور سیاسی اساس امور فرهنگی ولایت هست حرکت امان خسین علیه السلام هم حرکت ولایت مداریست قبلا خواندیم قبلا در جلسات قبل ارز شد و اده از ما حتما پیاده هم کردن این سوت را ولایت مداری یکی از رکن جامعه آشرایی است جامعه ای که ولایت مدار نباشه جامعه آشرایی شده نمیتونه سیاست اسلام سیاست ولایت هست سیاست امامت هست وقتی امامت در جامعه حاکم شد خداوند متعال نعمتهایش از آسمان و از زمین و مردم و ارمغان خواهد رسید ولایت اساس کار هست غدیر اساس کار هست این مسئله مسئله است. اما برای اینکه امور سیاسی مردم اصلاح بشه یعنی مردم ولایت مدار بشن تا یک جامعه جامعه آشرایی بشه برای این و برای اصلاحات فرهنگ مردم این پنج گزینه رو میتوان در نظر داشت اولین گزینه گزینه تشکیلات سازمانی است که اول جلسه هم یاد شد و راجع با مسئله تشکیلات سازمانی و اصول جامعه سالم در یک جلسه صحبت شده اون رو حتما داشته باشد در این قسمت یعنی در تشکیلات سازمانی سه تا نکته میتواند اثر گذار باشد یک رسانه که یاد شد دو حیعت مثل شما که حیعت تشکیل دادید همینطور این ها را در جای جای و نقطه نقطه جامعه باید تشکیل داد چون با وسیله حیعت هست که می میتوان معارف اسلام رو رساند دارو قرآن باید زبان قرآن باشد و ها باید زبان اسلام باشند و شبکه وکالت هست شبکه باید ایجاد کرد باید ارتباطات بود این حیعت با حیعتی دیگه باید ارتباط داشته باشه این ولایت با ولایت دیگه باید ارتباط داشته باشه و همینطور وقتی این شبکه وکالت حفظ شد میتوان ریشه دوان در جای جای جامعه ویلا یک فرد, یک فرد است یک فرد اگر در این قسمتی کابول باشد همینجاست نمیتواند غرب کابل اثر گذار باشد مگر اینکه که با وسیله شبکه وی کار کند که شبکه وی یک حرف اگر در اینجا گفته میشد مثل این است که در غرب کابول گفته شده است مثل این است که در غرب و شرق و جنوب و شمال افغانستان و دنیا گفته شده است لذا مسئله وکالت مهم هست ما در سیره ایمه علیه مسالات و سلام وی رو داریم و کلای بودند بودن در جای جای نقاط اسلامی این مهم هست سهون مسئله ای که در تشکلات سازمانی دخالت داره مسئله مجالس و سخنرانی ها و افشاگری خاص که روز قبل هم یاد شد و نکته دومی که در اصلاح امور سیاسی و فرهنگی مردم میتواند نقش بازی کند اینترنت هست امروزه تقریبا اینترنت جای تلویزیون و رادیو رو هم گرفته جای نشریه های چاپی رو هم گرفته شبکه‌های مجازی و پیام رسان ها و گروه ها و کانال‌ها اینها که در بستر اینترنت انجام میشود، نقش مهمی در طرز تفکر مردم، رویه سیاسی و اجتماعی مردم و حرکات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مردم داره نمی از این مسئله بیتوجه گذشت و مسئله ای که در امور سیاسی دخالت میتواند تواند پیدا کند همو ارتباطات یا سیله رحم یا زیارات یا ملاقات هاست دید و بازدید هاست قال الامام الحسین علیه السلام من سرهو رهو سعف اجله کسی که دوست داره امور طولانی بشه و یوزاد فی رزقه رزق زیاد بشه فلیصل رحمه باید به خیشانش بپیونده ساده ترین راه این که پیوستن بر رحیم سبب زیادی عمر می شود این گونه است بدون شکل هر حق که انجام می شود مقابلش باطل هست جامعه وقتی باطل درون اون جامعه نباشد خود به خود اون جامعه در حق هست وقتی جامعه آشرایی نیست معنیش این است که باطل در اون جامعه وجود دارد. وقتی باطل وجود داره یک نفر که بیاید حق رو در اون جامعه بده اون باطل دشمنش میشه لذا این نفر اگر یک نفر باشد فوری باطل نفس این نفر رو میگیرد جان این نفر رو میگیرد و از بین می رود. ولی همین یک نفر اگر به خیشانش پیوسته باشد من و رهو سعفی عجله یعنی عجلش به تاخیر بیفته عمرش طولانی بشه. گفته بارحیمش بپیونده به خیشانش بپیونده لذا همون یک نفر که حق را بیان میکند اگر در یک جامعه وارد بشود و باطل بخواید این نفر را از بین ببرد، خیشان و اقوانمش نمیگذارد که از بین بیبرد ساده راهی که آدم میفهمد این روایت را که واقعا پیوستن باخیشان و اقوام چطور سبب می که عمر مردم طولانی بشه این است. در واقع آشرا هم این مسئله بسیار عجیب غریب است نقل شده است می در واقع آشرا را همه را سر بریدند مگر دوتا شهید و همه شهدا را زیر سوم اصبان پایمال کردند، مگر دو تا شهید این دو تا شهید کی بودند؟ یکی از این شهده علی اصغر علیه سالت و سلام بود که حضرت آقا بورد دفن کرد و سرش هم جدا نشد حالا ممکن است بعدا اون نانجیبان چون این کرده باشند یکی دیگه از این شهدا هر هست نقل کرده است که وقتی اون دشمنان میخواست به بدن شهدا اسب تازن اقوام و خیشان هر نگذاشتن که به بدن هر اسب تازن و اقوام و خیشان هر نگذاشتن که سر هر رو از بدنش جدا کنند. و فعلا هم قبر هور دور از خود کربلای معلو و دور از باقی شهده است در یک محله دیگه هست تا زمان وقت کربلاییان در کربلا مشرف می شوند تا خود کربلائی ها اراده نکنند که بیرون قبر خور را زیارت کنند، مثل این است که هر را مردم فراموش کرده است. قبرش دور هست چون اقوام خیشانش بدن هر را بورده است. و در جای دیگر دفن کرده است دقیق می کنیم مسئله خیشی و اقوام در اسلام مهم هست و یکی از نکاتی که در واقع آشرا هم مورد توجه قرار میگیرد مسئله خیشی و قومی و, رقا و قرابت با پیامبر هست مگر در واقع کربلا کم یاد می شود که اهلوبیت بیت پیامبر نواده پیامبر. این خودش به این معنیست که خداوند متعال در این مسئله توجه دارد در این مسئله انایت دارد وقت خداوند می‌فرماید شما را قوم قوم کردم تا شناخته بشوید در قرآن کریم می‌فرمید. پس این خودش توجه به این مسئله هست این مهم هست من سر و ایون سعفی عجله کسی که عمرش طولانی بشه و یا فی در رزقش زیاد بشه فلیصل رفیمه با رفیم و خیشاوندانش بپیونده و چهارمون ای که در امور سیاسی و اصلاحات فرهنگی و سیاسی دخالت داره مسئله تربیت صحیح فرزندان و اعضای خانواده و جامعه هست وقتی یک فرد ما اصلاح میشه یک خانواده اصلاح میشه یک سه اصلاح میشه، دو ساحه اصلاح میشه، سه سه پس کل سه اصلاح شده رفت. این دخالت داره. چون یک فرزند صالح سبب میشه چندین فرد رو اصلاح کنه. در یک خانواده اگر پنج فرزند صالح باشند، این پنج فرزند صالح را فکر کنیم پنج پنج تای دیگر رو اصلاح کرد شد 25 تا. این 25 پنج بیست... هر کدام پنج پنج تایی دیگر را اصلاح کرد چند تا شد از صد هم تجاوز میکنه و هر کدام آن پنج پنجی اگر فرض کنیم آخرش به کجا میرسه یک خانواده اصلاح میشه این یک خانواده فرض کنیم پنج خانواده پنج خانواده همینطور بیس پنج خانواده و هر خانواده چه حالا حساب کن تا کجا پس مسئله اصلاحات و تربیت صحیح فرزند و اعضای خانواده و یک ساحت چقدر در اصلاحات امور سیاسی و فرهنگی مردم دخالت دارد و پنجمین مسئله که در امور سیاسی و فرهنگی مردم دخالت دارد آخرین مسئله را یاد کنیم مسئله اعلانات موقف رسمی یا صادر کردن بیانیه هاست مثل که بزرگان بیانیه صادر میکنند مراجع تقلید بیانیه صادر میکنند سیاسیون بیانیه صادر میکنند خود صدور بیانیه و نوشتن یک مسئله سبب میشه که مردم اصلاح بشن این مهم هست نمیدانم جمع حاضر چقدر بیستر انترنت هست یا نیست چقدر فضای مجازه هست یا نیست وقتی یک کسانی که مثلا فیسبوک دارن، یک فیسبوک اول محرم، یک عکس محرمی بگذارد، یک شعی دیگه وقتی ببینه و یادش میفته میگه من هم بگذارد. اون هم اون هم بگذارد. افغانستان گذارد. کابل گذاشت ولایت های همجوار مثل میدان و پروان و امسال هم اون ولایت. اون ولایت کل افغانستان گذاشد. کشورهای همسایه ایران گذاشت پاکستان گذاشت ازبکستان گذاشت چین گذاشت چون در چین هم مسلمان هست کشورهای دیگه گذاشت پس آسیا گذاشت آفریقا گذاشت اروپا گذاشت آمریکا گذاشت اقیانوسیه و بالاخره وقتی همه مردم میگذارن معنیش اینه که کل دنیا گذاشت وقتی کل دنیا گذاشت یعنی زمین سراسر غرق در ماتمه ما حسین علیه السلام و سلامشون این توریست فکر نکنیم ما یک نفریم وقت ما در روایت از حضرت امر علیه السلام و هست ظاهرم می شما فکر نکنید که یک جرم کوچگ هستید یک چیزی بی ارزش هستید شما این توریخ خود را فکر نکنید این توریست با یک کار ساده می توان حرکت بسیار عظیم را ایجاد کرد. اینا مهم هست و آقلان فراموش نمی این مسائل را امیدواریم از این نکات که در طی امسال توفیق پیدا کردیم همه با هم یاد کنیم بتوانیم توانیم بهره ها را ببریم و فردای قیامت از افراد موفق و بزرگشمرندگان شعائر خدا محسوب بگردیم ان شاء الله تعالی و به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صلى <تصفيق> الله عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفناؤك عليك منا سلام الله عبدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار يا سيدنا و مولانا اننا توجهنا و استشفعنا و الى الله وقدمناك بين يدى حاجاتنا يا وجيب الله بخیمه و حرم چ به و حرم خبر دهم بهخوا حرم که کشت شد برادرم آه حذبی برادری، افراد و طلابی که دنبال جامعه سازی آشورای هستید، اون که استوانه کار هست، اون که آدم رو یاری میکند اون که پشت آدم است، زمانی که از بین برود حرکت آدم ناکامل میماند. حرکت آدم به شکست مواجه می شود آه دلها بسوزد براید حسین جان عباسش آمد اجازه میدان تلبیدن گرفت، فرمود عباس جان ارکب, ارکب یا اخی برادر برو برایت فال خیام بیاور اما زمان شد که حسین مثل باز شکاری به سمت میدان حرکت کرد دشمنان را متفرق می همه فرار میکردند اما حسین صدا می زد کجا فرار میکنید در حالی که کمرم را شکستید حسین آمد کنار برادرش فاز در یک نقل ابلفضل رمق در بدنش بود اینجا خیال کرد دشمن است آمده تا سر فاز رو جدا کند عباس یک چشمش تیر خورده بود چشم دیگرش خونالود بود دست در بدن نداشت و چشمش رو پاک کند صدا زدای دشمن بگذار یک برادر دارم در این لحظات آخر میخواهم برادرم رو ببینم حسین نشست کنار برادرش صدا زد عباس جان برادر مظلومد حسین است حسین میخواست بدن برادر رو به سمت خیمگاه ببرد اما عباس عرض کرد آقا جان بدن من را نبر خیمگاه آخر من از دختر شرم دارم چسان به خیمه و حرم خبرده هم به که کشته شد برادرم آه زبی برادری صلی الله علیک يا أبو عبد الله وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أخيك زينب الكبرى وعلى أصحابك وعلى أولادك جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم يا حامد بحق محمد لاني يا علي بحق علي لاني يا فاطر بحق فاطمه لا يا يا محسن بحق الحسن لا <اللعلي عميل> يا يا قديم الاحسن بحق الحسين لا <اللعلي> يا امين <عميل> اللهم <اللعلي عميل> بحق تسعة المعصومين <اللعلي عميل> من ذريه الحسين لا الهی امروز آخرین جلسه ارز ارادت من به محضر مولا و آخای من حسین و اصحاب حسین است اله اون چه خیر من هست پیشه بگردان بده بدخواهان را به خودشان برگردان حسن توفيق حسن آقابد عنایت فرمای رسق و روزه واسه و حلال عنایت فرمای گناهان من اموات من مرحمت فرمای ما را از دنیا مبر اله, امی اله, امی اله قلب نازنین و خسته امام زمان رو از ماشاد گردان دقجل و فرج مولای من قنایت گردان دایمی اداه ما جمله اعوان و انصار و شعیان و یاران حضرتش قرار ده, ده اله این محرم را محرم آخر سال من قرار مده اله ما را از مجالسی که تا کنون برگزار شده است در دنیا و آخرت سبب ساز توفیقات من و بهرمند بگردان بله الهی ما را توفیق عمل کردن به دستورات خودت عنایت فرمان بله قلب من را به نور ایمان و قرآن منور فرمان الهی الهی زوی الحقوق زوی الارحام از مجالس من بهرمند گردان بله برآورده شدن حوایج مشروعی محتاج متمیسین دعا اینجم سلامتی و تقجیل فرج مومع اصر علیه و سلام امنیت کامل در ممالک اسلامی موفقیت اسلام و مسلمین موفقیت اینجم شفای مریضان اهل ایمان و سلامتی مسافران اهل ایمان و تقجیل فرج مومع اصر علیه و سلام رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة مع الاخلاص و والصلاة الله صل على محمد وآل محمد وعجّل <سؤال> فرجهم صل وسلم الله